عمریست که مداهی می ورد من است و اسباب می است هرچه در گرد من است. ظاهد اگر استاد تو اقلست اینجا خوش باش که استاد تو شاگرد من است. خوانند خانند مردمانم پیوست من بیگونه هم خیالشان بر من بست. بر من به خلاف شر ای اهل صلاح جز خمر و لبات بزدنا جور نست. در پی شهبت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بی خواهی رفت، بنگر چه کسی و از کجا آمده ای، که چه می کنی کجا خواهی رفت. گردون کمریز عمر فرسوده ماست، جیهون اثریز چشم پالوده ماست، دوزخ شرریز رنج بیهوده ماست، بردوست دمیز وقت آسوده ماست.